سوال پرسیدن که برای شناخت محسومی مناولای رو شمعرف کردن؟ محسومی یه زندگی طبیعی دارن که تاریخ های واقع نگالی بهش بهترین کتاب تاریخی که میشه معرفی کرد اگرچه قلمش قلم قدیمی هست اکاش مثلا میشد یه بیراسته امروزی میکردن منتحل عماله بسیار کتاب خوبیه زندگی چار درم رو داره این یه اشناییه یه وقت انسان میخواد معرفت به امام پیدا کنه به ایمالی مسلم اون باید با سپاتشون اشنا بشه کتاب الحجه در کافی شریف ترجمه شده کتاب الحجت بسیار کتاب خوبی برای باورمندی نسبت به امام علیه سلام اوصاف رو پرهیز کردم و شاید بهترین متن برای معرفت به ائمه معصوم سلام زیارت جامعه کبیره بهترین متن